أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغم معرضون والذين هم للذكاة فاعلون والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ قَالُوا وَالَّذِينَ هُمْ وَعَهْدِهِمْ صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسلیما سروران عزیز و حزار بسیار ارجمند و گرامی آیاتی را که خدمت شما تلاوت کردم الله تبارک و تعالی در این آیات دستور زندگی بشر را بیان میکنه که انسان به عنوان خلیفه پروردگار و به عنوان اشرف مخلوقات، به انوان حاکم دنیا چگونه باید زندگی بکند و چگونه روزگار را بگذراند که این روزگار هم مایه آسایش و آرامشش در این دنیا باشه و هم ذخیره آخرتش و هم مسیر را برای رسیدن به پروردگار هموار بکنه و راه توشهی برای زندگی پایان ناپذیر آخرت باشد خدای تبارک و تعالی در سوره مؤمنون وضعیت آفرینش انسان را بیان میکنه نعمت های جاودان بهشت را بیان میکنه و در این میان یک سری وظایفی را برای انسان طبیعین کرده یک سری مسئولیت های را در دنیا برای انسان تعیین کرده اول خدای تبارک و تعالی انسانها را متوجه میکنه انسانها ها را بیدار میکنه انسانها را خوشدار میده که انسان تو در دوران جوانی در دوران قدرت و در دوران زندگی دنیا در وهوهه زندگی دنیا از خودت غافل مباش. ببین ابتدای خلقت تو از چی بوده الله تبارک و تعالی می که انسان یک موجود بسیار ضعیف بسیار ناتوان من او را آفریدم و در این آفرینش هم خدای تبارک و تعالی قدرت شنیوانی میکنه که من انسان را از قطره آب پیدا کردم این آب را تبدیل به خون کردم خون را تبدیل به کردم در گوشت استخان پیدا کردم استخان را از گوشت پوشیدم و در نهایت انسان زیبایی دارای چشم دارای گوش دارای عغل دارای شرافت و دارای شخصیت آفریدم الله تبارک و تعالی کیفیت خلقت انسان را به نهوی مطرح میکنه که از یک طرف ضعف انسان را بیان میکنه و از یک طرف قدرت لایزال خودش را بیان می میکنه الله تبارک و تعالی می فرمد این انسان قدرتمند که بر همه هستی حکومت میکنه و تمام کائنات را من برای او مسلط کرداندن این خودش از همه موجودات ضعیفتر و ناتوان‌تره. کو در مقابل وجود انسان چه اندازه سرورانه گرامی مستحکم هست؟ این دشت و دریا و این درختان و سایر مخلوقات که الله تبارک و تعالی در دنیا وقتی انسان بغای اونها را نگاه میکنه وقتی انسان قدرت اونها را نگاه میکنه وقتی انسان استقامت اونها را نگاه میکنه وقتی انسان عمر طولانی اون اسیار نگاه میکنه و به خودش را مقایسه میکنه میبینه واقعا ان انسان در مقابل تمام کائنات بسیار ضعیف و بسیار ناتوانه اما خدای تبارک و تعالی میگه قدرت من را بند از قدرت من بناز که من تو را از این وضعیت ضعیف و ناتوان آفریدم اما تو را بر تمام کائنات مسلط کردم بر کوهات را مسلط کردم بر دشت و دریا تو را مسلط کردم بر فضا را مسلط کردم بر حیوانات تو را مسلط کردم بر درختان را مسلط کردم هیچ یکی نمی توانند از اطاعت انسان سرباز باز بزنه حیوانات وحشی را خدای تبارک و تعالی در در طبیعت اونها این خلقت را گذاشته این اصرارم که نرمی را گذاشته که بعد از مدتی حیوانات وحشی بر انسان رام میشن این یک فلسفه وجودی و قدرت پروردگار و بعد الله تبارک و تعالی می فرماید که من برای عزت انسان برای کرامت انسان دروازه های آسمان را بر انسان باز کردم زمین را برای انسان مستعد گرداندم که انسان به هر نحوی بخواهد از زمین استفاده بکنه و بهره بگیره زمین در اختیارش هست زمین را برای رویش گیاهان مختلف درختان مختلف میوه های مختلف قضاهای مختلف زمین را مستعد کردم و آماده کردم <تصفيق> نه تنها خدای تبارک و تعالیم میفرماید من در زمین این استعداد را گذاشتم بلکہ در حیوانات این استعداد را گذاشتم که برای شما غذای بسیار لذیذ و گوارا غذایی که تمام وجود تمام نیازهای بدنتون را تامین میکنه شیر را الله و تعالی میگه من من بین فرس و دمن لبنن خالصا صایغا للشاربین الله تبارک و تعالی قدرت نمایی میکنه قدرت خودش را و توان خودش را الله تبارک تعالی, تعالی برای انسان ارزه میکنه که من از وجود حیوانات از بین خون که در وجود حیوانات جریان داره و از بین گندگی هایی که در وجود و فضولاتی که باید دست بشن از وجود حیوانات از بین اینها شیری را بسیار سفید خالص گوارا بدون بو و بسیار لزیز، از مواد مغذی برای بدن انسان برای شما آفریدم الله تبارک و تعالى میفرماید. اینها مقدمه ای است که خدای تبارک و تعالی در اون آیاتی که در ابتدا خدمت شما تلاوت کردم الله تبارک و تعالی اونجا هفته وظیفه را من منشوها یادآوری میکنه سروران میگرم میفرماید که اگر انسان میخواد رستگر بشه اگر انسان میخواد موفق بشه اگر انسان میخواهد همینطوری که در دنیا آقا هست در دنیا حاکمه در دنیا کرامت داره در دنیا بر دنیا و کائنات مسلته اگر می خواهد که روز قیامت مورد اعزاز قرار بگیره مورد اکرام قرار بگیره فرشتها او را استقبال بکنن روح او روزی که از این دنیا روح از بدن جدا میشه، اگر انسان انتظار داره که روح اورا فرشتگان آسمان استقبال بکنن اگر انتظار داره که فرشتگان آسمان اول تا آسمان دوم روح ان انسان را بدرغه بکنن و همراهی بکنن خدا تبارک و تعالی میفرمد این دستورات رو اجرا کن اساس دینم هم همین همینه گرامی دین یعنی این دین یعنی انسان تفکر بکنه که من چی بودم چرا آمدم و به کجا برمیگردم هر انسانی این ست سوال رو در وجود خودش متصور کرد و در صدد پاسخ دادن به این سوالات برآمد و این سوالات را پاسخ داد. او را خدای تبارک و تعالی از بسیار مشکلات، از سختی ها نجات میده. گاهی بله انسان وقتی دچار غرور میشه، وقتی انسان دچار عجب میشه، خودبینی میشه، وقتی انسان دچار تکبر میشه، وقتی انسان احساساتی میشه وقتی انسان عصبانی میشه و با این عصبانیت و با این احساسات ممکنه که از دستش خونریزی براید ممکنه از دستش تحقیر براید ممکنه از دستش استهزا براید ممکنه از دستش تمسخر براید دیگران رو ناچیز بپندارد این انسان علاجش اینه که کافیه برگرده به قرآن عظیم الشان قرآن را مطالعه بکنه که من انسان که در این جایگاه قرار گرفتم و این همه نیرو و توان دارم من ابتدام چی بوده بخصی که انسان این سوال را نگاه بکنه که من ابتدام چی بوده با چه ضعفی و با چه الله و تعالی من را آفریده احساس میکنه که این قدرت مال من نیست این است. من نگاه بکنم این قدرت را من چگونه صرف بکنم این قدرت را چگونه من بکار بگیرم من برای چی آمدم آیا برای این غفلت آمدم؟ آیا برای فخر فروشی آمدم؟ آیا برای غرور آمدم؟ آیا برای تکبر آمدم؟ آیا برای خودپسندی آمدم؟ آیا من برای خود پرستی آمدم؟ چی بودم؟ برای چی آمدم؟ وقتی انسان به قرآن برمیگرده سروران گرامی و قرآن را مطالعه میکنه و بررسی میکنه بعد احساس میکنه که آه عزت انسان با دین خداست به همین خاطر الله تبارک و تعالی در وصف قرآن عظیم الشان شان میفرماید انه هذر قرآن یهدی للتی هی اقوام این قرآن به مستقیم، به شعرای ازت انسان راهنمایی میکنه و رهبری میکنه. شما زندگی قبل از بیست حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را ملاحظه میکنید، تاریخ بشریت را انسان راستی نگاه میکنه. میبینه اون انسان های مقتدر، اون انسان های توانمند. اما آرامش نداشتن، آسایش نداشتن ساده بگم عزت نداشتند کلامت نداشتند با اینکه خدا تبارک و تعالی فرموده ولقد کرم نبنی آدم من انسان را بر همه کائنات ترجیح دادم و اعلا و افضل پیدا کردم اما اونها زندگیشون از بسیاری حیوانات هم زندگی سختی داشتن لذا الله تبارك و تعالى گرامی قرآن عظیم و را با عنوان دستور زندگی، به عنوان هدایت و با عنوان نجات برای جامعه بشری از دوران بیست حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تا قیام قیامت. بیان کرده و به همین دلیل الله تبارک و تعالی این توصیه را فرموده که وعتصمو بحبل الله رشمان خدا را بگیرید اگر میخواید بسرات بس مستقیم حرکت بکنید اگر میخواید معزز بشید اگر میخواید آرامش داشته باشید باید به قرآن عظیم و چنگ بزنید و دستور زندگی را راه زندگی را از قرآن عظیم و دریابی. من عرض کردم در آیه که من تلاوت کردم سروران گرامی الله تبارک و تعالی راه نجات را اگر ما میخواهیم ما انسانهای وجود میخواهیم و انسانهای آینده نمیخواهن که زندگی شرافتمندانه ای داشته باشن زندگی معززی داشته باشند باید بیایند این هفته دستور را در زندگی خودشون پیاده خدای تبارک و تعالی در این دستورات هم حق خودش را بیان میکنه هم حق بندگان را بیان می کنه، هم روش زندگی در این دنیا را بیان می کنه، هم راه رسیدن به را بیان می کنه. می فرماید: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. امروز علیم الحمد لله بخش بزرگی از جامعه بشری ایمان به خدا دارن. کلمه لا اله الا الله محمد الرسول الله را بر زبان می رانند. اما سروران گرامی ببینیم این ایمان ما چند عیاره کسی میره به بازار کسی میره به مغازه جواهر فروشی اگر میخاد طلاعی بخرد یا طلاعی بفروشد این طلاع را آزمایش میکنه عیار این طلاع چقدره و الا علی الظاهر همه فلزاتی که از طایفه طلاع باشن رنگشون زرد. و وقتی اونها را در کوره میاندازن اونها برراغ میشن اما آیاری انطلاح چقدره؟ ایمانم آیاری داره سرورانی گرامیه آیا انسان، انسان مسلمان، انسان مؤمن، انسان موحد، انسانی که خدا را به یگانگی پذیرفته چقدر حاضر برای ایمان خودش به پرداخت بکنه؟ چقدر حاضر که دستورات خدایتا، آیار ایمان عمل سرورانی گرامیه Ha, چه اندازه انسان پایبند به با اعمال باشه چه اندازه دستورات رب العالمین را به جا بیاره و از منحیات دوری بورزد این عیار ایمانه اگر یک انسانی در نماز سستی میکنه در صداقت سستی داره در طاعت سستی داره در معاملات سستی داره در معاشرت سستی داره این انسان بداند که در ایمانش نسوارده این ایمان ایمانی نیست که انسان را مستقیما وارد بهشت بکنه اگر یک انسانی با این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بر زبان میراند وید دارد و ذکر می میکند اما بلتشوی چشم ترانی هم می کند. مال حرام هم میخوره دنبال زنا هم رود، دنبال کارهای حرام و نجائز میره دنبال قتل میره دنبال غارت میره دنبال شراب میره دنبال قمار میره این انسان ایمانش کامل نیست این عیار این ایمان خیلی پایینه ایمانه ولی این عیار این ایمان این پایینه که این باداشتن این ایمان باید خیلی از مشقتها و های قیامت را پشت سر بگزارانه سر سرورانی گرامی الله تبارک و تعالی من شرط اول ایمانه اما ایمان کامل ایمانی که باعث این واسه که انسان انجام دادن اعمال برایشون آسان باشه دوری کردن از گواه برایشون آسان باشه این محبت فطری که انسانهای امروزی با مال و با فرزند و با ارز کنم که جا با مقام و با پستارن هیچ فرقی برای انسان‌های 1400 سال پیش نمیکرد. اون‌ها هم همین همین فطرت را داشتند. اون‌ها هم فرزند را دوست داشتند، همسر را دوست داشتند، مال را دوست داشتند، ثروت را دوست داشتند، قوم و قبیله و طایفه را دوست داشتند. اما تفاوت در ایمانه است. ایمانشان را انقدر اگر ایمانشون را بالا برده بودند که وقتی با یک اشاره محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم جانشون را قربان میکردن فدا میکردن مالشون را قربان میکردن از حفظتی دستبردار میشدن با ما از ایمان دستبردار نمیشیم چی میخواد فدا بشه فدا بشه ولی ما از ایمان بردار نمیشیم اینجا بود که هجرت برای اونها آسان شد و الا یک انسانی که 20 سال، سی سال، 50 سال، شست سال، 70، 80 سال عمر خودش در یک منطقه بگذارانه با یک قبیله بگذارانه، با یک جامعه بگذارانه حالا دست از همه چیز بشویید شبانه زن و فرزرند را رها کردن به جای خود مال و را رها کردن به جای خود خطر را به جان خریدن خطر را به جان خریدن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حاضر که همه چیز را دست بردار بشه ولی مردم نمیگذارنش که راحت از مکر مدینه بره نه خیر جانش را در خطر میاندازه همراه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه از زن و از فرزند و از طایف و از قبیل و از سرداری خودش دستبردار شد شما میدانی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یکی از مراجع مردانه نکته بود مردانه نکته هر وقتی دوچار مشکل می شدن هر وقتی دوچار گرفتاری می شدن هر وقتی دوچار گرفتاری های اجتماعی می شدن میام زنونی می زدن جلوی حضرت سدیق اكبر رضی الله تعالا نه و حضرت سدیق رضی الله تعالا نه براین هریستفیدی می کرد براین آهکمیت می کرد براین هقزوات می کرد براین هفسلامی می کرد و جامعه مخمل نگهدارش تبدیل به جامعه از بسیاری فسادها از بسیار بسیار زعف از بسیار سوستی حفاظت می کر. اما این ابو بکر وقتی این موقعیت دنیا موقعیت اجتماعی موقعیت خیشالندی و قرابت یک طرفه و ایمان محمد الرسول ایمان آوردن بر محمد صلی الله علیه و سلم یک طرفه همه کنار می عیار ایمانش خیلی بالاست وزن ایمانش خیلی بالاست میگه حمد برن، اما من دستم از دامن حضرت محمد رسول الله صلی علیه وسلم جدا نشه جان بره مال بره سرزند بره و خانواده بره اما خدا از دست نرواد محمد رسول الله از دست نرواد این سروران گرامی اون ایمانی که الله رب العزت در این آیه بیان کرده که قد افلح المؤمنون بیشک رستگار شدن مؤنهایی که ایمان آوردن اونها اینکه کلمه لا اله الا الله، محمد الرسول الله را بر زبان راندن اونها رستگار شدن اما اون ایمان باید عیارش بالا باشه الله تبارک و تعالی بعد برای اینکه انسان سردرگوم نشه برای اینکه هر کسی از عیار ایمان تفسیر برای خودش از روی خودش عاری ایمان را قوت ایمان را مقام ایمان را و درجه ایمان را اثر خود هرگز تفسیر نکنه الله تبارک و تعالی یک سری اعمالی را برای من شما تعیین کرده و فرموده اینها اینها سنگ محک برای ایمان هر که میخواد ایمانش را بزنه این سنگ محک الذين هم فی صلاتهم خاشعون اونهایی که در نماز با تزرع در نماز با توجه الی الله می‌ایستان و نماز را ادا میکنند. اما گرامی، امروز ببینیم در جانعه ما چقدر بر نماز پای است. در محله زیبای خیام و در محله اطراف مسجد زیبای مکی که نسبتی با مکه داره چقدر ما نماز خان داریم من این روزهایی که طلاب عزیز تعطیل شده بودند این پروانه های محمد رسول الله تاثیر شده بودن گاه آدم می آمد تو مسجد مکی احساس قربت میکنه آ یک صف صف و از اون یکونیم صف و دو صف هم جمعی باز طلبه هستند حالا این مسجد من شما مسجدی که حیثیت قلب شهر من شما را داره اگر صف نمازگزارانش یک صف یکونیم صف باشه مساجدی دیگر را شما مقایسه بکنید مساجدی که در اطراف شما مقایسه بکنید و بعد بیاییم بگیم آه ما چقدر ایمان داریم من شما میگم لا اله الا الله محمد الرسول الله ابوبکر صدیق هم میگه لا اله الا الله محمد الرسول الله اما لا اله الا الله گفتن مسلمانان امروز با لا اله الا الله گفتن مسلمانان امروز این تفاوت را داشت که اونها میفرمایند دا اگر در جامعه ما کسی نماز نمی خوان ما او را مسلمان نمی دانستیم بین بین اسلام و بین کفر علامت شراختن مسلمان از کافر این بود که کسی که نماز نمیخوند مردم اون زمان او را مسلمان نمیدان مردم, ف... مردم یقین دارن که این کافره و الا برای یک فرد مسلمان برای یک فرد مؤمن برای گوینه لا اله الا الله محمد رسول الله امکان نداره او نمازش را قضا بکنه دوستان گرامی الله تبارک و تعالی میگه هر اندازه هر جامعهی به نماز پایبان باشه نماز را با جماعت ادا بکنه نماز را سر وقت عدا بکنه نماز را با خشوع و خضوع ادا بکنه و وقت نماز که آمد همه کارها را کنار بگذاره همه کارها را اون حدیث زیبای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها شما بارها اینجا از زبان علما شنیدید که حضرت آیشه می حضرت رسول صلی و سلام چنان به نماز پایبند بودن چنان به نماز پایبند بودن که در جوش نشستن با خانواده در گهبوه نشستن با خانواده و در سخن گرم با خانواده وقتی صدای معزن بلند میشد الله اکبر حضرت پیغمبر چنان از خود بی خود می شد که انگار ما را نمی شناسه انگار نمی دانه و ما مثل انسانهای اجنبی ما مثل های ناشناس در جلوی چشمان مبارک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار می گرفتیم و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برای نماز می رختم حضرت عزیزان گرامی ما اگر بخواهیم زندگی آرامی داشته باشین قرآن می الا بذکر الله تطمئن القلوب دلتون رو میخواد آرامش بگیره با ذکر خدا بالاترین ذکر خدای تبارک و تعالی نماز عزیزان گرامی به همین دلیل حضرت عمر رضی الله تعالی در سرلوحه دستوراتی که برای حکام برای کسانی که فرمان روایان مسلمانان بودن کسانی که الگوی زندگی مسلمانان بودن حکام مسلمانان بودن استانداران مملکت اسلامی بود در سروهه همه دستورات حضرت عمر رضی الله تعالی دستور بیدان که آه مردم نماز و می فرمود که کسی که نماز را زایع بکنه فهو لما سواها از یع و دی اشیاء دیگر را و امانت را و اخلاق را و صداقت را و افت و پاکدانی را و پرهیز از مال حرام را به مراتب زایع میکنه نمازی که خرج نداره نماز هزینه نداره انسانی که می بیاد برای عدای نماز پوری ازش نمی گیرند هیچ هیچی نداره در, در عدای زکات باید انسان مال خرج بکنه در انجام حج باید انسان مال خرج بکنه برای عفت خودش و برای ازدواج باید مال خرج بکنه اما برای نماز هیچی خرج نمیشه. شه حضرت عمر فرمود کسی که نماز رو زایی میکنه فهوه لما, لما سواها از یع او اشیاء دیگر را به مراتب بیشتر زایی میکنه دزا عزیزان گرامی ما به عیار ایمانمون به عنوان ریشه ایمانمون به عنوان پشت وعنه مستحکم برای تسخیر نپذیری ایمانمون لازم بگیریم نماز رو کتایی در نماز در عدای نماز کوتاهی نکنیم نه خودمون کوتاهی بکنیم و نه در خانواده هایمون و سوستی از خودمون نشان بدیم ما باید این فکر نکنیم که صد بلند میشیم بچه هفت هشت ساله را برای نماز بیدار نکنیم گریم آب بچه خبیده دکتر ده دوازده ساله را برای نماز بیدار نکنیم همسر را برای همه نازهای همسر را تعمیر میکنه شهر لباس زیبا بخره باید بخره حق غذا باید تعمین میکنه نفقه باید تعمین میکنه وسائل را باید تعمین میکنه این جای خود اما نوبت به نماز که درست آمیشالله آقای خانه از خانمی اد بیرون و زن و فرزند از نماز بیدار نکنه. این سرورانی گرامی آفاتی است. این آفاتی است که در مسلمانان را و راغبیشه مسلمان را قلب مسلمان را بینوازی گرفت. بینوازی و خدا ناخسته کاهی نوازی و سستی در نماز این گیری است که بر قلب مسلمان بر قلب ایمان مسلمان برخورد میکنه و ایمان مسلمان را سست میکنه ایمان مسلمان را ضعیف میکنه ایمان مسلمان را بی جان میکنه ایمان مسلمان را نتوان میکنه این ایمان بعد نمیتونه انسان را از منکر نجات بده این ایمان نمیتونه انسان را به عمل خیر وادار بکنه این یک مسئله که باید من شما مسئله نماز را و مسئله برگزاری نماز را بسیار در اولوییت اول قرار بدیم نباید در بازارهای هایمان شما مسلمانان ساهدان تجار ازیز ساهدان نباید مغازه کناری شما بی نواز بمانه خدا قسم والله العظیم اگر من شما خودمون نماز بخوانیم ولی به فکر برادر مسلمان خودمون نباشیم به فکر همسایه نباشیم به فکر هم مغازهی که کنار به کنار ماست باش می نشینیم چای می خوریم اگر فردا برای این برادر عزیز و همسایه کنار به کنار مغازه تجاری ما مشکل پیش بیاد باش میریم می‌کنیم، می‌ریم سراغ سراغش خوبه اما اگر او به نماز ببار بیاد خدا قسم خدا حقش را از این همسایه می پرسه بازار را باید اصلاح کرد محلات را باید اصلاح کرد روستاها را باید اصلاح کرد الان که داشتم خدمت شما می آمدن توی بسمت اتاق یاد آوری کن آدر لارستان شده پنجاه نفر کشته شده چندین نفر زخمی شده چرا چرا مسلمان از این آیات پروردگار بیدار نشه چرا باید نشاناتی ده که خدای تباره بطاله برای بیدار کردن مسلمان در گوشه گوشه دنیا، گاهی بر خورشید گرفتگی می آید، گاهی زمین لرزه می آید، گاهی توفن می آید، گاهی قحطانی می آید، کجای این مسلمان که بیدار نمیشه؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برای بیدار کردن ما و دادن و قطعا مسلمان، چرا در خواب غفلت منتظر چی؟ منتظر پیری؟ منتظر موت، منتظر فقر، منتظر گرفتاری ها، منتظر مصیبت، منتظر سختی ها هستید بعد دست دعا بلند می کنید، دست نیایش بلند میکنید. کنید چرا در دوران آسایش؟ چرا در دوران آرامش، چرا در دوران امنیت بیاد پروردگر انسان نباشه لذا الله تبارک و تعالی به شما مسجدی ها خطاب میکنه که شما را از یک طرف خدای تبارک و تعالی اهل مسجد را اهل نماد را ستایش میکنه تعریف میکنه فرشتگان را برای تماشای شما و برای دیدار شما برای نظاره شما خدای تبارک و تعالی از یک طرف فرشتگان را دعوت میکنه میگه اه بیاید بنگرید این انسانها های مخلص را بیاید بنگرید این انسانها های عاشق را که دست از هر چیز برداشتن روز جمعه است اعلام خدا را لبیک گفتن اذانو جی علی الصلاه في يوم الجمعه فاصوا الى ذکر الله واذکروا البيت از یک طرف خدای تبارک و تعالی این تعریف را و این ستایش را میکنه اما از یک طرف خوشدار میده سروران گرامی از یک طرف یادآوری میکنه که شما متعلق به خودتان نیستید متعلق به نفستان نیستید و انفسكم و نارا شما خودتون و اهل بیتتون خودتون و نجات بدید بعد الله و تعالی در عن الله معرضون اون انسان های رستگار اون هستن که از کارهای بیهوده از غیبت کردن، از دروغ گفتن، از ظلم کردن، از اسراف کردن پرهیز میکنن. و این آیه گهشی بسیار یک جمله است و هم عن اللغم معرضون اما در هر بخشی از زندگی ما بخواییم این آیه را تفسیر بکنیم برای این آیه مستق پیدا بکنیم در هر بخشی از زندگی انسان مستق پیدا میکنه. لحظه سروران گرامی از کاری که نفع دین ما و نفع دنیا ما در اون نباشد باید انسان پرهیز بکنه لغمانش اینه اینه این. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمود من خسن اسلام المرء ما مالا یعنیه یکی از زیبایی های اسلام یکی از درخشش و یکی از نورانیت های دین یک انسان مؤمن و مسلمان اینه که کارهای بیهوده را دست برداره از اسراف دست برداره، از تبذیر دست برداره از بلا تشمیق قمار دست برداره، از شراب دست برداره از بلا تشمیق چشم و گناه با چشم، گناه با گوش، تلفن را برمیداره و صدای نام را به لذت گوش میکنه، این کار, کار عباسی است از کلم کار لاغتی است، این کار لایانی است، این کسی که مرتکب خدا نخواست این عمل میشه، این بدانت که این داره بر صورت زیبای ایمان خودش خراش وارد میکنه، چهره یک، چهره زیبای انسان را خدا نکنه، خدا نکنه کسی بیاد مثل گربه خراش بکشه، چهره پر از خون میشه، همین چهره چهره ای که این زیباست، جذابیت داره، بعد اون نفرت میکنه اون چهره را نگاه بکنه. ایمان وقتی با گناه با معصیت مخلوط شد چهره ایمان مخلوط میشه این ایمان کارایی خودش را زیبایی خودش را جذابیت خودش را شیرنی خودش را خودش را از دست میده سروران گرامی و الذین هم عنی لغو معرضون وقت نماز فرارسیده رسیده و در ماه فروردین قرار داریم فردا دوازده فروردین هست سال روز برقراری نظام جمهوری اسلامی 27 سال پیش در چنین روزی ملت ایران به میدان آمد و با انداختن رأی مثبت برای برقراری نظام اسلامی در اون رفراندوم تاریخی ملت ایران آمد و گفت ما آزادانه انغلاب کردیم و آزادانه با, با کاملتری شیوه دموکراسی نوع حکومت خودمون را خودمون انتخاب میکنیم ما مسلمانی ملت ایران به دنیا ابلاخت آر ما مسلمانیم ما انقلاب برای نام نکردیم ما انغلب برای گوشت و برنج نکردیم ما انغلب برای شرف کردیم برای عزت کردیم برای نماز کردیم برای حاکمیت قرآن کردیم و آمدن نظام جمهوری اسلامی را با انتخاب خودشون و مجموع ملت ایران با 98 خورده ای اعتماد نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کرد و الان بر مسلمانانی که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، بر حکامی که سردمداران نظام جمهوری اسلامی هستند، باید این شعار قرآنی همه زنده می که الله دیره، این مکه نهول فن آرزو آقاموسرات آنهايی که من انها را حاکم بر زمین بگردنم، بر کچاي زمین اونها را حاکم بگردنم، آنها شعار خدا را، اونها حکومت خدا را، دین خدا را بر این کره خاکی مسلط میکنن. کنند لذا ما روز جمهوری اسلامی را گرامی می داریم و از خدای تبارک و تعالی عرض که که پروردگر پرچم اسلام را و کلمه توحید را بر همه دنیا بگست و بما به عنوان پیروان صدیق محمد رسول الله توفیق انایت بکنه که ما سنت های سنیه ی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را در همه اعباب زندگی در همه شبونات زندگی ما سنت های رسول صلی اللہ علیہ وسلم را سیرت پیغمبر را احیا بکنیم. دوستی یاد داشتیدار قاتل روز یک شمه که سیزه فروردین هست بل روز 13 به در با توجه به اینکه شلوغ میشه دوزاه هم بالاخره در کمینن فکر میکنن که همه خانه‌ها خالی برای حفاظت خانه‌ها هم که شده برای حفاظت از از کنم که تصادفات و از شلوغی ها بالا روزهای خدا زیاده هر روزی دیگه لر شما میتونید 14 فروردین برید 15 فروردین برید در طول سه ماه به هر خدای تبارک و تعالی گذاشته هر روزی برید و الا اگر این کسی معتقد باشه که حتما روز سیزده در خانه ماندن نحسه اگر چنین اعتقادی داشته این اعتقاد اعتقاد فاسد است از دیدگاه فقه اهل سنت اگر کسی این اعتقاد را داشته باشه و با این دیدگاه برو بیرون که خیلی کار بدیست است و الا بالاخره تفریج چیز آزادی است اما اینکه تعیین کردن یک روز و اوتو به دست 13 دادن و در محلکا انداختن و در تصادف انداختن کارسایی نیست ان شاء الله روز 13 را دوستان تو خانه می نشینند تلاوت قران می کنند از خانه های همسایه خودشون مراقبت می کنند که دزدی به خانه هایشون نایاد الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم نعملنا ما لا توقت لنا به وافعنا واغفر لنا وارحمنا أنتم أعبانا فانصرنا على القوم الكافرين فرمر دقارا خدايا ما زندقين دارين بغفلت بالغزرانين خدايا تنسى الفنجاح صاليا زعور لغزران دين خدايا عبادتنا خردين خدايا ساس میکنیم اگر در این لحظه ببارگای تو دیاریم ببراقات تو شده در این مقرآن مقدس خدای همه دست انعابت دست تومه دست نجوم بارگاه تو بلند کردیم الهی اثر تخصیل ما در درم فرما خدای قلب افنا در گناهان ما خدا خدای ما را توفیق بندگی انعابت فرما ایلی العالمین خدا یا مرز خواب غفلت بیدار بگرداد خدا یا این آفتاک می آین این زلزله ها می این مصیبت ها می آین خدا یا تعرح من راهی مینی برای بیدار کردن ما می آین خدا یا مرز خواب غفلت بیدار بگرداد توفیق بندگی ایلیت بفرما توفیق عبادت ایلیت بفرما الهی العالمین سنتای سنه رسول الله را در زندگی ما احیاب گردن شاعر دین در زندگی ما احیاب گردن مار خدا از گناه و معسیت حفاظت بفرما پروردگار مار از سختی ها حفاظت بفرما از آفتهای آخر الزمان مار حفاظت بفرما الهی العالمین رب و حدایت ندر خانهای باضیار جوابان مار آهل غزدار قرآن قران و ملت ما را هدایت یافت به گردان ای اهل عالمین بازارها را ما روح عنایت فرموا فرماندار باران رحمت را نازل کردی بیش تر ازی نازل بگردان رحمت آیا معنوی را بر قلوب ما نازل بگردان مساجد و مدارس ما را در تنای قدرت حفاظت بفرما علما و ما و علما حقانی بگردان طلاب ما را مخلص بگردان ملت ما ملت رشید بگردان ارائ ع فروا زدار نق دشمنان اسلام را نقرست قرار را به خودشان بر گردان مسلمانان واحد کل عاییت بفروا مسلمان ا ر هم محبت اننایت بفرما پروردار بیداری اسلامی را عام بگردان همه ی منلت اسلام را بیدار به گردان منک اسلامی را خدای از گز روزگار حفظ ب فرما من ناعتماار از گز روزگار حفظ بهفرما ع این گزار تاریخی که مملکت امارت شاروس خدایا به سلامت این مملکت را حفاظت بفرما الوه العالمین نظام اسلامی را برهانی قره خاقیر حاکم بگردان ہر ورد نگارا الا الہ الا الہ امین ما الایت گردان خدای جمعی از مردم زاهدان پر ورد اموز در مدینے ا سید نواسے جمعہ ادا می کنن خدای امر در نواسے جمعہ انہ شریک میگرداد دعائیں انہار در حق ما قبول بفرما در حق خود خانواده وادیشن قبول بفرما الا الہ مشکلات عالم اسلام را رسیدگی بفرما مشکلات جہان اسلام ر حل بفرما ہر خدایا ابو حمای ما خاتمه با خیر انایت بفرما همه گذشته گان ما را ببخش و بیاموز پروردگار خاتمه ما را با خیر بگردان او صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اله و صحبی اجمعین آمین آمین امین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین